La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasoolullah, alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahi r-Rahman rahim السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شنوان دگانی عزیز به ما خوش آمدید امروز جمعه safar 27 مطابق 20 janwari. راژیو صدا جندالله برنامه هفته از جمه تا جمعه را به زبان فارسی آغاز نمود البته برنامه که تهیه دیدیم به تمام شنوندگان که فرن آوازی ما را مشنوند و به خصوص به کسانی که به زبان فارسی بلادیت دارند تقدیم میگردد از خداوندی زلجلال میخواهیم که به ما توفیق ادامه این برنامه را نصیب فرماید البته در برنامه امروزی من خطاب و من الله توفیق با داشته های برنامه به خدمت شما هستیم خدا کند که داشته های برنامه ما مورد توجهتان قرار گیرد زیاد پر حرفی نمی کنیم میرویم به طرف بخش اول برنامه در جریان هفته گذشته استودیو جند الله یکی از مراکز مجاهدین را زیارت نمودند و در آنجا با برادران مجاهی صحبت نموده از صحنه های تعلیمات نظامیشان مشاهده به عمل آوردند البته در این دیدار همکاری ما خطاب با استاد و بعضی از شاگردان محترم مرکز مزکر مصاحبه ای را انجام داده و از این مصاحبه پروگرام را تهیه نموده است که اینک با هم میشنویم بسم الله الرحمن الرحیم شنواندگان عزیز ما فعلا آمدیم در یکی از مراکز مجاهدین در این جا تعداد زیادی از نوجوانان هست که بچش میراثن بخاطر الهی کلمه لو بخاطر بر افغانستان لوی تقی درنجا یک جوج در یک چترجم شده گستان ما آمدیم تا این که از اینا یک برنامه تاهیا بگنین و ما در Proharfinam, mikin meidän tarvei on osaa. Osaaja, muhtaram, mä se voide, että, itse, ja, ja, shenavandagan, määräfinamoda, ja, asioita, ja, keifietyt korhaitaan, mälemmoti, muhtasar, bdeen. Alhamdulillah, me odati, jää, yksi, 4. Täällä, ymmäskä, Alhamdulillah, se ما تعلیم در دا الحمدلله بسیار به حالت خوب بگ، نظام خوب بگ، نظم خوب میگذره میشه مشرح خوب، منوانی سوال، شما قسمی که گفتین خودتان تعلیم گرفته بن نخست، حال هم شما اینجا من حیثیت شما اینجا تعلیم میدین، کدام بخشی از علوم نظامی را؟ یعنی کدام بخش است؟ این علوم نظامی بخش بخش داره، ممکن بخش متفجرات است، اص. بخش اسلحه است، اص. بخشی صنای پر است، دیگر بخش است. شما فعلا کدام بخشی تدریس می‌کنید؟ در که ما تدریس میکنیم دیگه چه چیز هست دوره ما این است و چیزی مت دوره درس مخابرات هم است و اسلحه خفیفم است در پلوش آه. شما چه سه چیز گفتم در این مرکز اسلحه خفیف است ببینم بسیار میشه بعنوان آخرین یا سیوم سوال از شما بپرسیم توصیه خوبی به برادران داشته باشین توصیه اولی من که است که برادران اگه تعلیم میگیرن؟ وس خصوصا د اینجا کې اومه بسیار مسولیت کلان درهم. و باز این مسولیت که میگیرن، ای درس چې میگیرن بسیار به قايده و به قانون خوب بگیرن و ای را حفظ بکنن نه انکه ما ما این کار شویم، ما این کاری بو کتاب و بو کتابچه شویم. پدما این کاری شویم چې د حفظی ما باشه و د هر منطقې کې رفتیم، د هر جې رفتیم ما بو کتابچه و به هیچ زیانر نت داشته باشیم و ما د اوجا به توری کامل بتوانیم کار بکنیم و دیګه انکه کسای که برادرای که در اینجا درس مین میگیرن والاذی کی میران در ساحه در منطقه‌ای تشکیل می شون به امری عمر را کوشش بکنن کی از ضربه به افرادی ملکی و به ضربه به کسایی کی غیر چیز هستند اونها یعنی مرتد نیستن یا کافر نیستن دیگه Ah, kauh, ei, se, kutsunia, ostajasi, muhtaremme, i merkäs, bud, asunemme, mahala, enke, jak, bradari, diga, min, heist, jak, shagur, dia, danush, mus, derinja, ki, baksi, ilmi, muta, mi, amuja, der, palu, istuas, karor, dara, me, azi, no, me, porsim, ki, no, chi, kutsunia, idaran, beno, no, valle, savol, me, jak, bradari, ki, طالب منکا من بگریم و با ایتو اخ خار بو گنم کی دشمن از جے باره می رو ختم کنم درس تون چیتو راست آیا درس را فهمیده را هستین چیتو درس تون بسیار بسیار خوب جزاك الله خب دری بخش از برادران دووم میپرسیم on خود ما ما عرفی میکنن بشنویم کی اینا بچی منظور اینجا اومدن و اینا بعد از اینکه اینجا از اینجا فارغ شدن چی میخوان بکنن نام من ابو سعد هستم من در اینجا با طریقه خوب بیاموزیم در آینده به جامعه خدمت کنیم با مسلمان ها باید ما برسه و کفاری که در وطن ما مثلا آمدن اونها میکوشن که تا اینکه مسلمان ها را از بین ببرن و ما میخواییم در اینجا علم متفجرات را یاد بگیریم تا اینکه کفار را از بین ببریم از خاطر ما در اینجا آمده ایم که علم متفجرات یاد بگیریم با استفاده از این فرصت رسیدیم پیش ی بسار با بویسور ابو دارک نشاسته استان ببینیم آشنا بشنیم کی هستند ما معرفی میکنن اسم من عبدالله حقانی است من به اینجا آمدم به خاطر تعلیم کردنی علمی نظامی به خاطر متفجرات یعنی آموزشتن متفجرات در اینجا من تشریف ای مرکز تشریف آوردم تا اینکه در آینده در آینده کی است به مقابله یهود و نصارا یعنی سنگر با سنگر مقاومت بکونم بخاطر این اومدم دی بخش یک برادر نوجوان دیگی ما حضور پیدا کردن از اینا میپرسیم نخوست خدا ما معرفه تا اینکه در مقابل دشمن خود بسیار با و بسیار با شجاعت و بسیار با یک تخنیکای خوب کار بکنیم میاییم در فرد آخیر که آیا بینوان فرد اخیر از این سوال میکنیم قسمی که از معلوم مالوم ما چند بار دیگر برادره دیده خب موضوع بسیار بدارازو نمیکاشنیم میریم طرف از اینا که در من خود خودمان معرفی میکنن بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و چیزی که ما را باعث کرده است در اینجا در صف مجاهدین آمده ایم یگانه ظلم و ستم دشمنها و حجومی نظامی دشمنها به کشور و میهن عزیزی ما افغانستان و اونها ظلمهای متعدد میکن بالای امت اسلام بخصوص بالای ملت مظلوم و بیچاره افغانستان که هل لحظه ما از, از, از نقطه نظری اسلامی که بگیریم یگانه ای وظیفه ایمانی و اسلامی ما است که باید یک امری، امر و فریزه و وجیبه ما است که باید ما تعلیم نظامی بگیریم تکتیکا و تکنیکای نظامی را بیا و باید در سنگری جیحات مردانوار و شیرانه مقامت بکنیم تا اینکه دشمن های سلیبی را در هر سرزمینی که می باشند آنها را سرکوب بکنیم و شعار کلمه الله را در اونجا ما تدبیق تنفیز بکنیم و بیرق اسلام را در اونجا بر احتیزات در آوریم جهان سپاس او در اخر از تمام برادران این مجلس ک دنجه ما وخت شونه گرفتیم تشکر میکنم خدوان تعالی موفقیت و کامگاری را از شما بگردونه بالا تعالی تمام کفور جهان که امروز در افغانستان یا در مملک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 او میرایم می به طرف بخش دومی از برنامه در این بخش گزارشات داغی هفته را می که در کشور افغانستان و پاکستان علیه دشمنان صورت پذیرفته است. <password> افغانستان روز شنبه به تاریخ 21 سفر مطابق 14 جنوری در ویلایت لوگر ولسوالی برک برک یکی از هیلوکپترهای نیرهای ناتو سقوط نموده با سرنشینانش به هلاکت رسید روز یک شنبه به تاریخ 22 سفر مطابق 15 ژانویه در ولایت خوش مجاهدین امارت اسلامی یک ماین کنار جاده را در سرک مومی جاسازی نمودند در نتیجه انفجار ماین مسکور، معین مواد مخدر با راننده اش به هلاکت رسیده و چندین تن دیگر آنان جراحت برداشتند روز دوشنبه به تاریخ 23 سفر مطابق 16 ژانویه در شهر پول علم ولایت لوگر مجاهدین امارت اسلامی یکی از هلیکوپترهای نیروهای ناطور سقوط دادند و همین تا روز سه شنبه با تاریخ 24 سفر مطابق 17 ژانویه در سایت اینترنتی امارات اسلامی آمده است که در ولایت ننگرهار یک برادر استشهادی به نام قاری عمر با استفاده از موتر کرولاک مملو از مواد منفجره بود بالای یکی از مراکز دشمن عملیات استشهادی را انجام داد که در نتیجه این عملیات هفتتا از asker دشمن کشته و سی ارادتان که ایشان از بین رفتند و همچنین روز سه شنبه با تاریخ 24 سفر مطابق عفده جنوری در ویلایت هلمان ولسوالی ناد یکی از هلیکوپترهای دیگر نیرهای ناتو با سرنشینانش سقوط نمود این گزارش را یوسف احمدی سخنگوی طالبان تایید نموده و فرمود که هلیکوپتر مذکور در نتیجه حملات مجاهدین امارت اسلامی سقوط نموده است و همچنین روز چهارشنبه با تاریخ 25 سفر مطابق 18 جنوری در ولایت هیلمند یک برادر استشهادی با استفاده از موتر عملیات استشهادی نمود که در نتیجه 12 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی گردیدند و همچنین روز چهار شمبه به تاریخ 25 سفر مطابق 18 جنوری در سر انفجار یک ماین در ولایت هیلمند یکی از افراد استخبارات همراهی محافظش به قتل رسیده ره جهنم گردیدند. همچنان روزی پنشنبه به تاریخ 26 سفر مطابق 19 جنوری در ولایت قندهار در نزدیکی کاروان نیروهای ناتو عملیات استشادی صورت گرفت که در نتیجه آن یکی از موترهای ناتو با سرنشینانش کاملا از بین رفت الله اکبر پاکستان در منطقه بدر در وزیرستان جنوبی با تاریخ 13 سفر برادران مجاهد بالا یکی از پسته های دشمن از سلاح هاوان 82 شش مرمی پر نمودند مرمی های مذکور به هدف صحیح اصابت کرد ولی کن از تعداد تلفات دشمن احوال دقیقی در دست نیست و همچنین با تاریخ 18 سفر در سراروغ مهاجرین با همکاری انصار منطقه به خاطر انجام عملیو در نزدیکی یکی از پسته های دشمن رفت و در آنجا به تقسیم گردیدند کی دو گروه به خاطر هجوم و یک گروه به خاطر دفاع مستقر گردیدند گروه اول با سلاحهای دست داشتهشان بالای سنگرهای دشمن هجوم بردند که در نتیجه نصف پوسته را فتح نموده و هفت از عساکر دشمن را به قتل رساندند بعدان چهار نفر از ماین‌پاکان دشمن در نزدیکی گروه دفاعی مجاهدین آمدند مجاهدین با استفاده از فرصت همه ایشان را به ضربی گرله به قتل رساندند الحمدلله او از این کشته شدگان 3 مل جتری یک عالی ماین‌پاکی و پونزه هزار کلدار غنیمت به دست آمده و بعد از چند دقیقه افراد دیگری از دشمنان اسلام با کمک کشتشدگانشان می آمدند یکی از موترهای ایشان به ماینه مجاهدین برابر گردید که در نتیجه ایشان نتوانستن با کمک کشتشدگانشان بیایند شنوندگانی عزیز، این بود داشته های برنامه روزی ما که به خدمت شما تقدیم گردید، از خداوندی متعال در بدل چیزهایی که شنیدیم، عجل بزرگی را خواهانیم، جمعه خوشی داشته باشید، تا برنامه دیگر، خداوندی بزرگ، یارو یاورتان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. يا ساحق اقصان رصاص رشاش ابي زمجر واطلب ما رصاص رشاش ابي زمجر واطلب ما رصاص رشاش زمجر